خالق مهرافرین آن خدای مهربان و توانا سلام و درود بر شما همراهان شبانه مجموع برومی هزار افسان، شب آرام و خوشی براتون آرزو مندیم افزانه ها از این ترین و غنی ترین بخش گنجینه ادبیات شفاهی مردمان هر سرزمین به شمار میرن رند چیزی فراتر از خیال بافی یا پژواک سنت‌های گذشته است بیش از هر چیز این افسانه‌ها با به رؤیاهای کسانیه که اونها رو پرداخته گفته و شریدن رؤیاهایی مثل زندگی سرشار از زیبایی، صلح، آرامش، عدالت اجتماعی عشق، مهربانی و کار و تلاش لذت بخش و ما افسانه امشب ما افسانه ایرانی حاج عباس رو براتون نقل می کنم برگرفته از کتاب افسانه های مردم ایران گردآوری و بازنویسی جمیله فراهانی امیدوارم لذت ببرید در زمانهای قدیم مرد مؤمن و درست کاری زندگی می کرد که در دنیا فقط یه آرزو داشت و اون هم رفتن به مکه و زیارت خونه خدا بود مرد مؤمن افسانی ما که عباس نام داشت سالهای سال کار کرد و کار کرد و پولاشو جمعآوری کرد و اینکه خرج سفرش به مکه ماهیار شد عباس از این بابت خیلی خوشحال بود و خدا رو شکر میکرد که بالاخره میتونه به آرزوش که زیارت خونه خداست برسه عباس با خوشحالی گفت خدایا شکرت فردا اول وقت سراغ همسفران میرم ببینم روز حرکت قافل چه زمانیه بعد آروم و خوشحال وسایلشو جور کرد که موقع سفر دیگه وقتشو صرف جمع کردن نکنه عباس فردا صبح از خونه بیرون اومد تا به سراغ همسفراش بره و روز حرکت قافله رو بپرسه در بین را از کنار خرابه گذشت خرابه خیلی ترسناک بود و بیرون از شهر قرار داشت عباس همینطور که جلو میرفت یهو زنی دید که هراسون در میون خرابه ها میرفت و با اضطراب و نگرانی به این طرف و اون طرف نگاه می کرد عباس لحظه ایستاد و کنجکاوانه حرکات زن و زیر نظر گرفت. زن همچنان با ترس و اضطراب اطرافش رو میپایید. عباس با خودش گفت: خدایا این زن اینجا توی این خرابه چیکار کار داره؟ از چی نگران و عروسانه؟ شاید شاید کسی اونو دنبال میکنه ولی نه باید یه چیز دیگه ای باشه عباس طوری که زن متوجه حضورش نشه که رفت و با دقت به حرکات زن چشم دوخت. زن یه دفعه شد و مرغ مرده ای رو از روی زمین برداشت و زیر چادرش پنون کرد عباس مات و مپوت مون که این زن مرغ مرده رو برای چی برداشت و چرا پنهونش کرد زن بعد از اینکه مرغ مرده رو زیر چادرش پنهون کرد با قدم های حراسان و شتابان از خرابه بیرون اومد عباس که حالا دیگه کنجکاویش بیشتر شده بود آهسته آه آهسته و پاورچین پاورچین دنبال زن بهراه بود زن رفت و رفت تا به خرابه دیگه ای رسید توی اون خرابه چند تا بچه قد و نیم قد نشسته بودن و با خاک بازی میکردن بچه ها تا زن رو دیدن دست از بازی کشیدن و با خوشحالی به طرفش دویدن عباس برای اینکه دیده نشه خودش رو پشت دیوار پنهون کرد و از دور همه چیز زیر نظر گرفت در اون خرابه خونه مخروبهی بود که کفش هسیری کهنه پن شده بود و در گوش و کنارش چند ظرف دیده میشد. زن و بچه ها به خونه خراب رفتن زن با سرعت مرغ مرده رو پاک کرد و توی دیگی بار گذاشت. عباس این صحنه رو که دید آه از نهادش بر اومد و شستش خبردار شد که موضوع از چه قراره عباس با خودش گفت به تو هم میگن آدم چطور مثل کپک سرت رو زیر برف کردی و از هیچ چیز خبر نداری، ها؟ می‌بینی؟ می‌بینی این زن و بچه چه وضعیتی دارن؟ خدایا چه شبا که این زن بیچاره و بچه هاییتیمون سر گرسنه به بالین گذاشتن و توی غافل خبر نداشتی به تو هم گن آدم هم؟ بعد عباس رو کرد با آسمون و با شرمندگی گفت خدایا خدایا منو ببخش من غافل و اف کن خدایا خودت میدونی که من تمام آرزوم زیارت خونه توه ولی ولی الان دیگه از اومدم به خونه تو منصرف شدم منو ببخش که از بنده تو غافل بودم عباس به خونه که برگشت تمام پولهایی رو که برای سفر مکه با هزار زحمت جمع کرده بود برداشت و راهی همون خرابهی شد که زن با بچه هاش تو اون زندگی میکردن عباس با قدمهای لرزون آروم به خراب نزدیک شد بچه ها دور مادرشون حلقه زده بودن و مادر داشت برای اونها غذا که باز همون مرغ مرده بود درست میکرد عباس به اونها نزدیک و نزدیکتر شد زن با دیدن عباس حراسون از جا بلند شد و گفت شما شما کی هستین؟ با ما چیکار کار دارین؟ من من من عباس لبخندی زد و گفت نه ترس من فقط اومدم به شما سر بزنم کاری با شما ندارم زن که کمی ترس ریخته بود پرسید شما کی هستی؟ عباس نزدیک تر رفت و دستی از مهر و محبت بر سر یکی از بچه ها کشید و گفت من یه رهگذرم رهگذری قافل من با یه سیزوتر از اینا به سراغ شما میومدم ولی خب بعد عباس پولها رو بزند داد و گفت خواهرم این پولا رو بگیر و خرج بچهایی گرسنت گرستند بکن دیگه هم از اون غذایه توی دیگ به اونان نده برو یه مرغ زنده و سالم زن با تعجب و عباس نگاه انداخت و کلام اونو رو کرد و گفت شما شما کی هستین؟ چرا این همه پولو به ما دادین؟ عباس خندید و گفت گفتم که من یه رهگذرم که دیر به وظیفم عمل کردم ولی الان دیگه خیالم راحت و آسوده است که به وظیفهم عمل کردم و خدا از من راضیه زن هنوز متعجب و مبهوت بود بچهها با خوشحالی دور عباس حلقه زده بودند و اونو میبوسیدند روزی گذشت همسفرهای عباس به خونه عباس اومدن و گفتن عباس حاضری؟ فردا باید آزم خونه خدا بشی بالاخره به با و آرزود رسیدی عباس گفت نه برادر من نمیتونم بیام راستش یه گرفتاری برم پیش اومده که هم همسفرهای عباس با تحجب پرسیدن چی شده؟ کدوم گرفتاری؟ بگو شاید ما هم بتونیم کمکت کنیم عباس گفت نه ممنونم شما برین خدا و همراهتون برای منم دعا کنین برای منم دعا کنین انشالله قسمت منم میشه یکی از همسفر رو گفت عباس قسمت تو شده تو که تو جمع کردی کاش میگفتی به ما گرفتاری چیه حیفه که به آرزوی دیرینت نرسی عباس لبخندی زده گفت انشالله به لطف خدا به آرزوم هم میرسم شمام دعا کنین هم سفرای اباس از اون حلالیت طلویدن و قافله به طرف مکه به افتاد و قلب عباس رو هم با خودش بود بشنوید از همسفرهای عباس که به زیارت خونه خدا رفته بودن همسفرهای عباس هر جا می و به هر جا که می رسیدن عباس رو جلوتر از خودشون می دیدن. اونا با تعجب از هم دیگه می پرسیدن. یعنی چی؟ عباس که با ما نیومده پس چه چجوریه که هر جا می زودتر از ما وارد میشه یعنی اون به ما دروغ گفته؟ نمیخواسته با ما همسفر بشه؟ خلاصه همسفرهای عباس سخت در تعجب بودن تا اینکه قافله منزل به منزل رفت تا به سرزمین مکه رسید همسفرهای عباس اونجا هم عباس رو دیدن عباس با اونا خونه خدا را زیارت کرد و مراسم حجو به جا بود. همسفرهای عباس هر جا میرفتن میشیندن که کسی با صدای بلند فریاد میزنه حاجی عباس حاجی واقعی است. اونا خیلی تعجب کردند و با خودشون گفتن: خدایا این دیگه چه سریه؟ خلاصه هم سفرهای عباس مراسم حج انجام دادن و به شهرشون برگشتن. همسفرهای باز وقتی به شهرشون رسیدن بعد از کمی استراحت به دیدن عباس رفتن و بهش گفتن <تصفح> تو که گفته بودی نمیای زیارت خونه خدا پس چجوری تنهایی را افتادی اومدی خونه خدا ها یکی از همسفرها اضافه کرد و گفت لابد دلت نمیخواست با ما همسفر سفر بشی عباس از شنیدن این حرف ها تعجب کرد و پرسید نمیفهمم شما از چی حرف میزنید من که مکه نبودم هم سفرهای اباس خندهای کردن و گفتن <تصفيق> عجب عجب که تو مکه نبودی ها عجب باس دست از شوخی بردار یک کلام بگو دوست نداشتی همسفر ما باشی و خلاص عباس با ناراحتی گفت این چه حرفیه که شما میزنید شما همه مثل برادرای منین چرا من دوست نداشتم با شما هم سفر بشه ها من که گفتم من گرفتاری داشتم نتونستم بیام مکه با که تمام آرزوم همین بود ولی خب قسمت نشد همسفرهای عباس با تعجب به دیگه نگاه کردن و پرسیدن یعنی یعنی تو به زیارت خونه خدا نیومده بودی عباس گفت نه من از اینجا تکون نخوردم هم سفر و باز هم با تعجب به همدیگه نگاه کردن و پرسیدن اگه تو به مکه نیومدی پس چجوری ما هر جا میرفتیم تو جلوی ما در حال حرکت بودی ها؟ عباس تکونی خورد و پرسید کی من؟ من جدشو شما حرکت میکردم امکان نداره من من اصلا از شهر بیرون نرفتم چه برسته به مکه هم همسفرها باز هم حرف عباس و باور نمیکردند و عباس اونقدر گفت و گفت تا بالاخره برای اثبات حرفش مجبور شد ماجرای کمک کردن به اون زن و بچه هاش رو برای همسفرهاش تعریف کنه و اضافه کرد راستش این بود که من هر چی داشتم و پسند کردم خرج اون زن زاغ نشین و بچه کردم به همین دلیلم نتونستم با شما به زیارت خونه خدا بیام همسفرهای عباس که این ماجرها رو شنیدن سخت تحت تاثیر قرار گرفتن و گفتن ها بس بی نبود که ما همه جا تو رو می تو با این عمل خیر ثواب و عجر مکه رفتن رو بردی و در حقیقت حاجی واقعی تو هستی حاج عباس و از اون روز به بعد همه عباس رو حاج عباس صدا میزدند. افثانه ایرانی حاجباس رو براتون نهر کردم برگرفت از کتاب افسانه های مردم ایران به گرداوری جمیلی فراهانی افسانه ها رو یادمانی از زندگی مردم گفتن چون از لحظه های تلخ و شیرین اونها مایه گرفته و در فرهنگ آداب و سنن عقاید و آرمان های اونها ریشه داره افثانه ها بی تاریخ و بی زمانن. و عشق و علاقه به افثان پردازی و شنیدن و خوندن افسانه ها در همه تاریخ تمدن با بشر همراه بوده هزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت سالکور میراستار بهار گیویان اجرا مهران دوستی سلوارگر راهگیری قفاری تغییر کننده زهرا عبدالله زاده تا افسونی دیگر بدر